بسم الله الرحمن الرحیم فبشر عباد یستمعون القول فیتبعون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم دو عزیز در پنجمین برنامه از برنامه های عقیده در قرآن و سنت در یک سفر زیبا سفر توحید با هم یک جا در حرکت هستیم دوستان عزیز و گران قدر محترم خواهران و برادرای عزیز ما و شما در برنامه قبلی سر مفهوم لا اله الا الله صحبت کردیم چی معنا داره؟ گفتیم که لا اله نفیه میکنه و الله اثبات میکنه در بخش اول لا اله مسلمان همه معبودان غلطه معبود غلط اینه باید نفیه بکنیم بعد از اون ایلالله میگیم که معبود حق است شایسته عبادت است ایناله یک سوال دقیق پیدا میشه که امی معبودان باطل یا معبودانی که حق نیستن امی خود کلمه اله چه قسم بفامیم که اور نفیه میکنیم باید بفامیم که اله چی اس تا ما اور نفیه بکنیم عله معبود ناحق است معبود باطل است هیچ معبودی باطل که مستحق،, مستحق عبادت باشه معبود نیست اینال امی اله که اینا او معبود و مخلوقات را که معبود قرار داده بودن اینال اله گفتیم احیانا از بعضی از مشرکین بر خود ملائکه ها را اله قرار داده بودن اما آیت شریف هم خدمت تار که و یوم یحشرهم جمیعا روزی که حشر میکنن تمامشان را سم یقولو للملائکتی باز میگه بر ملائکه ها اها اولای ایاکم کانو یعبدون آیا اینها کسانی بودند که شما را عبادت میکردند؟ پس بعضی کسا بودند که تصور میکردن که معبود ما ملائکه ها هست این مشکل مشکل بعضی از مشکی بنان بعضی کسا اله خود کی قرار داده بودن؟ ملائکه ها را. بل پس ای هم نفیه شد لا الهه نیست هیچ ملیکه قابل پرستش الا الله محبود از اینا هم رد شد بعضی کسایی دیگه بودن که پیغمبران اله قرار داده بودن گفتیم در برنامه قبلی که بعضی ها حضرت عیسی علیه السلام پرستش می کردن و آیت شریف گفت که و اذ قال الله یعیس ابن مریم ا انت قلت لناس تخیذونی و امي آیتو گفته بودی؟ ایسا علیه السلام میگه که سبحانکه ما یکنو لی ان اقول ما لیسا لی بحق میگه که حق ندارم اینه من آگفتیم و پس بعضی از مشرکین الله که قرار داده بودن؟ پیغمبره و پیغمبر بعضی ها ایسا بعضی هم مجسمه ابراهیم و اسمایل علیه السلامه مانده بودن وارا عبادت میکرده و هم شد بعضی از مشرکین دیگه قبرهای صالحین و شخصیتهای عالی ره قبریش عله خود قرار داده بودن مثل که بیبی عایشه ردیالله عها میگه که ام حبیبه و ام سلامه در مورد کلیسایی که در حبشه دیده بودن و در مورد آن کلیسا و تصاویری که در کلیسا بود به پیامبر صلی الله علیه وسلم قصه کردند که ما رفتیم یک کلیسا بود دوی نزو مثلا تصاویر گذاشته بودند. عزت نبی کریسه برشان گفت که آنان کسانین که هرگاه کدام شخص نیک و صالح در بینشان وفات کنه گفه پیغمبر صلی اللہ علیه آنان که ها... کسانی هستند که هرگاه کدام شخص نیک و صالح در بینشان وفات نماید بالای قبرش سجدهگاهی می سازند سر قبرش مقبری بسیار بزرگ می با بسیار گنبد بزرگ بسیار خوب چیز فرشکو و دراونجا اونجا رکوب و عبادت میکردن و در آن تصاویر را رسامی میکنند قبر جور کردن سر قبر بسیار تعمیر بزرگ ساختن قالنا را فرش میکردن، فرشوار را فرش میکردن، باز اوجه میرفتن عبادت میکردن و وقتی که عبادت میکردن و در آن تصاویر رسامی میکردن این مردم بدترین مخلوقات الله در روز قیامت میباشند. این مردم که پیغمبر سنده برشن چی گفت که؟ مردم حبشه مردم حوشا چی میکردن؟ وقتی که یک دوست یک شخص صالح و خوب یک عالم یک دانشمند یک مرشد یک بزرگ یک آدم با تقوا خوب وقتی که وفات میکرد سر قبر ازی سعی تعمیر بسیار بزرگ برای برنامه و دیوارش دیواراش تصاویری می میکردند و اوره بر خود می ساختن. باز نبی کریم صلی الله علیه و چی گفت در مورد ازیا پس نبی کریم صلی الله گفت که این مردم این مردم بدترین مخلوقات الله جل جلاله در روز قیامت می باشند قابل پیغمبرصلی الله علیه و این حدیث حدیث صحیح است یا حدیث ضعیف است حدیث صحیح است که ایره صحیح البخاری در کتاب الصلاه شما بخاری شریفه باز کنین کتاب صلاح را باز کردین امی حدیث شریف در اونجا ذکر شده است. پس بعضی کسا اله یا معبود خود صالحینه و قبرهای صالحینه گرفته بده پس لا اله چی است که نیست هیچ ملائکه هیچ پیغمبر و هیچ صالح و اولیاء الله مستحق عبادت نیست فامیدن کلمه لا اله،, لا اله این قسم فایده میکنه برای یک مسلمان چهارمین قسم مشرکین هم وجود داشتن که اینا را عبادت میکردن اله خود که قرار داده بودن؟ جنهار دلیلتان چی هست؟ ما خواهد عقیده در قرآن و صنعت صحیح رسول الله سسان میخنیم و جعلو آیت سوری مائده آیت صدم وجعلوا لله وگردانیدن بر الله شرکا الجن شرکان جن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصف به هر سوره وجعلوا لله شركا الجن انها گردانیدن بر الله كيرگردانیدن انها به الله گردارین چی؟ شرکا شریکایی که از جن یعنی معبودهای خود در پالوی الله یعنی معبود باطل دیگه که جن است او را هم یا عبادت میکردن در آیت شریف دیگه چی میگه؟ بلکانو یعبودون الجن اکثر هم مؤمنون اکثر هم بهیم مؤمنون بلکانو یا عبادت میکردن چی را؟ جن اکثر به و آیت شریف دیگه دستوری جن آیت ششم چی میگه آیت قبلی که خانم سری سبا آیت بود آیت ششم سری جن چی میگه و آننهو کان رجال من الانس و بود تعداد از مردا از انسانها یا عزون بر رجال من الجن اینها پناه می و با از جن فزاده هم رحقه. پس ای آیت شریف هم میگه که بعضی ها معبود خود جنهاره پس لا الهه نیست هیچ جن مستحق عبادت سعی کنین لا الهه نیست هیچ ملائکه هیچ پیغمبر هیچ شخص صالحی، هیچ جنی نیستن قابل عبادت پنجمین قسمی که مردم او را اله گرفته بودن که لا الهه الا الله لا اله او را نفیه کرد و چی بود؟ بعضی از مشرکین بعضی از اشخاص نیکه، اولیاء الله و دوستان الله را که اینا در اصل شخصیت‌های خوب بودند، مجسمه ها و بت‌ها و تصاویرشان عبادت می‌کردند. ده در حقیقت لات، عزى، منات در حقیقت شخصیت‌های خوبی بوده بودند که در زندگی خود یا بودا مثلا آدمی خوبی بوده باد از مرگ انار تعظ بعد از مرگ انهاره تعظیم می مثلا در الرحیق المختوم در الرحیق المختوم شما اگر بخوانین میگه که بطلات در شهر طائف و اطرافش پرستش میشد لا در اصل مرد صالح و نیکوکار بود که قبل از مردن به مردم کمک میکرد. او مخصوصاً حجاج خانه خدا را کمک میکرد و با آنها یک نوع از غذا که آن را سویق گویند هدیه میداد. وقتی از دنیا رفت، همین دوست خدا خوب سعی کنید. وقتی از دنیا رفت مردم به خوبی از او یاد میکردند. و قبر او عبادتگاه ساخته شد سپس گنبدی را بر او ساختن و به او توسل می و قبر او را تواف می و برای رفع نیازها و مشکلاتشان از او کمک می تا اینکه که مجسمه را ساخته و آن را من حیث معبود پذیرفتند. پس یکی از مشکلاتی که مشرکین داشتن و ای بود که اینا را مختوم میگه که در, حق... در حقیقت امیلات که پسان باز مجسمه ازیر ساختن ای در حقیقت یک شخص نیک و صالح بوده وقتی که ای وفات کرد امی آدم نیک و خوب وقتی که وفات کرد قبر ازیر چی کردن سجدگاه ساختن و مجسمه ازیر ساختن و آوردن کلان مجسمه ازیر رو در یک جای نصب کردن و بالاخره به با عبادت ازو شروع کردن پس در وقتی که یک مسلمان پس وقتی که یک مسلمان لا اله الا الله رمایخانه اینجا تمام این اشخاص صالحی که اله ساخته بودن اینا اینا را هم نفیه میکنن نیستن اینا هم معبودان باطل هستن معبود حق نیستن اینا رو میکنن چون از اینا چی بود شاشمین چیزی بود که بعضی از مشرکین اجرام سماوی بعضی ها حیوانات بعضی ها نباتات این را الهه خود ساخته بودند مثل که ما شما بینیم بعضی کسا گوساله را پرستش میکنن بعضی ها ما پرستش می کنن امروز در عصر ما شما هم میکنن بعضی ها گوساله را پرستش میکنن بعضی ها ما را پرستش میکنن بعضی ها فیل را پرستش میکنن بعضی ها درختار پرستش میکردند به یک درخت تواف میکردن و رو کوس اجره میکردن بعضی مثلا ستاره پرست بودن بعضی هم آفتاب پرست بودند. اینه پس دلالالله الله اینا هم نفیه میشن یعنی هیچ حیوانه هیچ نباته هیچ درخته هیچ چیزی از این کل از این باطل هستن مستحق عبادت نیستن اله یا معبود بعضی از مشرکین علما و متصوفینشان نشان بودن وقتی که یک عالم علمای سو, ویا علمای سو و یا یک گوشنشین و کس که تارک دنیا می بود مردم مردما چی میکردن یا برشون صاحب بعضی از علماء سو و بعضی از متصاویفین سو که در بین از اینا به شکل تارکین دنیا و ها و اینا بودن یا چی میکردن یا قانون الله را تغییر میدادن یعنی عبادت اصلا تنها رو گو سجده نیست وقتی که ما یک عالم یا یک متصوف حق بتیم که بر ما حلالت این کنه حرامت این بکنه خواب ردیس رو که سجده بکنیم در مقابلش این هم عبادت است و یا که مثلا برسول صلاحیت بتیم که قانون الله جل جلاله را تغییر بتن و قانون دگی بر ما بسازا. از این خاطر آیت شریف میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابم من دون الله میگه اینمی نصرانی ها چی کردن؟ اتخذ و گرفتن احبار جمع حبر است و حبر عالم میگن اصلا حبر رنگ میگن و محبر بوتل رنگ میگن که حبر چون عالم زیاد نشته میکنه و رنگ مصرف میکنه با حبر میگفتن علمای خودا و احبار جمع حبر است یعنی اینا گرفتن علمای خودا و رهبان جمع راهب است راهب و راهبه هست کسایی هستند که در کلیسا میرن و میگن ما ترک دنیا کردیم. این ترک دنیا بیا در اسلام نیست، لکن ما که ازدواج نمیکنن و میرن دخترای کمربسته و بچه‌ی کمربسته در کلیسا این رواج است، اینا رو میکنن و چی میگن؟ انال الله جل جله بر ما گفت که اینا گرفتن احبار و راهبان خدا ارباب من دون الله. اینا یاره چی کردن؟ یارا العیاز بلله پروردگار های خود یا یعنی خدای خود گرفتن قسم اشتوم از اله یا معبود که مشرکین داشتن بعضی سنگ و چوب و گیاه و اینا را پرستش می کردن. که اینا احیانا مثلا سنگ در شانی بچی خود اولادای خود عویزان می کردن چوب عویزان می کردن و هدفشان چی بود؟ هدفشان نی بود که یا می خواستن که اینمی سنگ و چوب و گیاه ها و چی اه، یاره یا را مثل پناه میجوستان براز یا وقتی که انسان به یک مخلوق پناه برن ایره هم در حقیقت اله خود قرار داده. نهمین الهه که مشرکین عادت داشتن او را پرستش می خب پرستش یا به شکل و سجده و یی است یا به شکل پناه جستن است که به اون میره پناه میجوه و میگه بر برمه بچه بتی یا دختر بتی یا اینی طفل من نگاه و یه چشم زدن نگاه کو از چی نگاه و و که قانون از به این قانون الله سر خود تطبیق میکرد که ای کل از یا نفیه میشه لا اله نیست هیچ معبود قابل پرستش پس در این قسمت چی است؟ در هست نومیر قسمش ای بود که بعضی از مشرکین به درخت ها پناه می بردن هم در اندوستان اگر شما برین مثلا درخت مقدس وجود داره. بعضی ها بازگرد درخت تواف می و می گیرن چی میکنن؟ کنن تار میگردن و, می و یا بوته آیا بطه مقدس هست بوته بطه رو کوسجده در اون وقت هم همی قسم مثلا درخت بود که مشرکین رو به نام ذات انوات میگفتن ببینن حضرت ابی واقید لیسی را دیلانهو میگه که هنگامی که پیان بستن به حنین رفت از درخت عبور نمود که مربوط مشرکان بود و آن را ذات انواد مینامیدن و بر آن صلاحای خیش را آویزان می کردن یعنی میگفتن مالا سبی درخت درخت تبر، تبرک است تبر است یکی چوب رو شمی گرفتی یکی خدا میماند کالای تبانی ویزی چیز کنید این درخت درخت چی میشه؟ درخت تبرکی هست. حضرت ابی واقید لثیرید رضی الله تعالی چی میگه که هنگامی که پیامبر صلی الله به این رفت از درخت عبور نمود که مربوط به مشرکان بود و آن را امی درخت چی میگفتند؟ ذات انواد میگفتند. این درخت که مشرکین سلاحای خود سر روز آویزان یعنی تبرک میگرفتند. اناله مسلمانان برای پیامبر (ص) گفتن که ای رسول الله صلی الله علیه و ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نیز ذات انواد تعیین کو کسای از مسلمانایی که نو انوز عقیده را درست نفهمیده بودند درست مثلا آگاه نبودند یا دیدن که والله اینا انت یک درخت دارن و سالاره را ویزان میکنن و برکت داره و چی داره مردم بسیاری وقتا مشکلی هست که بعضی کسا زود متاثر میشه به یک فرهنگ و به یک ولو عادت ولیو که این عادت و فرهنگ غیر مسلمان است، مثلا که بسیاری وقتها مسلمان ها و بسیاری چیزها همین روز سه و شاو مگی و چلا و روز چلا اینی اکثرش از اوندوها و از اینیا انتقال کرده و مردم متاثر شدن گفتن یا مثلا بیت خواندن در پیش قبرها و قوالی خواندن و دول زدن این اگر اکثر اکسر یاد از که تا از و دیگرال یا به فرهنگش بچید. خب به هر صورت اینجا هم یک تعداد مسلمانایی که آن روز درست نفهمیده بودن و در اصل پیامرسان بودن برش گفتن که رسول الله صلی الله علیه و بر ما هم مثل درخت داری یک درخت تا این که ما هم بیاییم همه تو در صلاح های خداویزان بکنیم و ما هم مثل تبرکی باشه پیش ما از مردم مردن که این صاحب درخت متبرکه چطور دیگر رسول الله گفت که سبحان الله استخان شما مثل امو سخن قوم موسی است که اونا هم برای موسی علیه السلام گفتن که بر ما بت مثل بت دو تو این بکن ام گفته که سبحان الله هذا ما قال قوم موسی اجعل لنا الهن كما لهم اله بقى موسی میگفره موسی علیه السلام که بر ما هم بت این بگو مثل که اونا هم بت دارن وَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِيهِ بای قرآن برسمیه که قسم از به اون که نفس ما در تصرف و دستازوست او من زنده و مرگ میتن لَتَرْكَبُنَّ من مَنْكَانَ قَبْلَكُمْ شما دیگه روش های قدیمی ها را میگیرین یعنی شما هم امو تقاضایی که قوام موسیٰ علیه السلام یه حدیث 2106 تلمیزی شریف است دیگه گفت که شما هم امی حرکت که اونا میکردن شما ایره هم میکنین دیگه ازی خاطر صحابه کرام وقتی که چیز فامیدن حق فامیدن میگه که در بیعت رادوان امون درختی که زیر زوب مسلمان ها بایعت کردن برای پیغمبر سلسلم ابن والله میگه که عمر ابن خطاب میگه امون درخت که زیرش بیعت رادوان شده بود زیر زوب بعض مردم ها میرفتن تبرکن نماز میخوندن آمر بینین خطاب را دلاتان هو دور داد که درخت برین قطع کنین اما درخت زشت شده چرا که دید که مردم آی سا تا اینجا میره نشکه بالاخر مردم به می که تبر کی وچوت را و چران از بالاخره درخت بر سیر شروع بکنن یعنی یکی ماچ میکده کهقل خود بیگی و یکی باز های سای هم و به جیل همتو که آمده رفت بلخره نسل به نسل بلخره با درخت و بود پرستی از خاطر حضرت عمر هم حدیث شریف است صحیح بخاری و مسلم هم روایت کردن که حضرت عمر دلتانی را کاملا از بین برد دهمی قسم از الهه یا معبود باطل از اینها کی بود بعضی انصار های تاغوتی را او هم در جمله اله میره، معبود باطل میره بودن که طاغوتایی بودند که ادعا میکردند که صاحب ما قانون می اساس زده قانون الله و مردمان میگوین برای ما چی کنین؟ تسلیم شوین و قانون ما را تطبیق بکنین ما براتون حلال بیان میکنیم ما براتون قانون میسازیم ما براتون حرام بیان میکنیم در همه چیز دیگه آیت شریف میگه که فمع یک به تاغوت هر کسی که کافر شد به تاغوت بگی که لا اله نیست هیچ تاغوتی قابل تسلیمی و قانون سازی و عبادت و طاعت و پناه جستن الا الله و غیر الله جل الله جل, جل, جل عبادت میشه و هم استعانت استغاثه پناه برده میشه و هم قانون الله جل جلو تطبیق میشه دیگه ازی خدمی فهم به طاغوتی اول باید به طاغوت کافر شمی و به بالله و ایمان به الله بری فقد استمسك سکه بالعروت الوسقا اینی انسان است که بموچ رسمان ام محکم الهی چی کردن؟ اینا چنگ زدن و در آیت شرفشی میگه وَالَّذِينَ اشتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ کسانی که اشناب کردن از تاغوت که عبادت بکنن پس دوستان عزیز اینی اقسام بود که در اله یا معبود ایره مردم قرار داده بودن و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم بر ما تشریح کرد آیات قرآن هم یاره بیان کردن پس ما لا ها وقتا چیست؟ نیست هیچ ملایکه نیست هیچ پیغمبر نیست هیچ دوست خدا نیست هیچ مجسمه نیست هیچ قبر نیست هیچ جن نیست هیچ سنگ، نیست هیچ چوب نیست هیچ درخت نیست هیچ ماهتاب نیست آفتاب ستاره کلش هیچ کدام از نیستن مستحق عبادت و طاعت و کمک خواستن و پناه بردن الا الله بغیر از الله جل جلوه هست پس موحدین مطابقه لا اله الا الله هم قانون الله را سر خود تدبیق و هم عبادت ایا کن عبود مخصوص الله میکنن و اهم وقتی که مشکل برشاند شد به الله جل جلوه پناه میبرن تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان قرار میگیریم شما دوستان عزیزه به رب زلجلال به الله جل جلوه هم اسباریم و علیکم و رحمت الله و برکات